بسم الله الرحمن الرحیم و لله رب العالمین و صلوه علی سیدنا محمد نواله طاهرین و علیت و دائمت مجمعین اللهم از فینا جمیه موشت دیم ورحمد رحمت که آخان رحمی از تو که ابتداعاً روایات رو بخونین و خیلی از روایات هم نخوندین یه وقت نشده نیه انصافه خیلی طولانیه مخصوصا اونای رو که مرموم سیدون فاوست رضوان الله تعالی در پراجل محمون نرکن پراج. و بعد از مسئله روایات طبق بحثی که ترتیبی که بحثی که بحث بحثی کلمات فوقها و برخورد فوقها با مسئله بود بعدش هم تحقیق مثلا قبل از تحقیق جمعه از آیات که ادعا شده که این آیات مثلا نازرن به افخاص نجومی اونا را هم مفرح کردیم و به مناسبت روایت گفتیم برای جنبندی نهایی روایات به کتاب خود مکاسب دو مرتبه برمیگردیم مقداری از روایات رو من زانه روزی گفتم که بهار در اختیار مرموم سال و سال سا مرکاسب نبودیم چرایشون از بهار هم چند جو نهارو کرده اشتباه بود به هر حال در کتاب مکاسب مرمومشی شیخ بسید سر رو متعرض این روایات شده و بعضی از عبارات رو اوورده مثلا از کلم مرحوم شیخ، اون ترتیب قانونی و طبیعی خودش نایورده بعضی از عبارات رو نقل کرده مثلا ابا... منجول یعنی ها بله از عبارات ج... به اصلاح کنزل توائد مرحوم کراکیگی نقل کرده از عبارات مرحوم سید مرتزا نقل کرده ما فعلا نظرمون بیشتر به مرکنه نهاییه به است که در اينجا ايشان نارو کردن. ايشون فرمودن بين که در بحث سالش مجموعه روایاتی بله. فقط ارسال محبت خل معتبر عن النبي آنهاو قال من صد در منجم من اوکاهن است فقط کفر به ما اون زل محمد صل الله عليه و آله و سلّم. بعد ايشون فن و هویه دل الاعخار مثل حكم به قبل نقضين. ارز شد این روایت حالا ایشون که می که من در معتبر هم نیده من چون مراجعه نکردم در وسایل از معتبر نقل کرد اما در کتب اصحاب قطعا آمده حالا اگه از معترانازه هست کتب دیگه هست نقل شده این مطلب و به لحاظ مسادر ما در مسادر ما اونی که الان موجوده در یک متنی از اون قصه‌ای که اون منجم خدمت امیر رو مومن این هست. اون منانجی در فتوی نهروان که خدمت امین گفت نروید و فلان که دیگه توفیقی بود تقریبا 5 تا تا متنشو سندش رو خوندیم و تهلیلش رو عرض کردی تو بعضی هاش اعجب علاقه به هست. با ظاهر عبارت اعجب علاقه که کلام خود امیرالمومنینه موقوف علیه به اصطلاح مرفوع نیست موقوف به اصطلاح. از اینکه کردیم همین عبارت رو در کتاب تذکرات الخواص این متن رو ابن جوزی سلسله جوزی مفصل در ترسات الخواص آورده اونجا داره فعلی همه اثر رسول اللهی بود پس در متونه ما اونجا یک الان بنده خبر دارم منحت همی... در... یک مورده یعنی روایت اعمیوم رو یا موقوفا در نهج البلاغه و مرفوعا در کتاب ترسات الخواص در مصادری که ما در اختیار داریم مرفوعا نیامده عن الله نیم. این به لحاظ ما اما تو مسادر اهل سنت هست به جمله در کتاب سران بیحقی جلد 6 مناسب جلده هست ساهر و کاهر اینشالله بعد مسادر اهل سنت رو یه مقدارش دیروز خوندیم بعد اشاره می‌کنیم. احتمالاً هم اگر بعدها مثل تذکره نغره کرده برمیگرده به مسادر اهل سنت تو مسادر اهل سنت من صد ما نجیمم به ما قال فقط کفره به تذکره اینجا متون ما مجموعا بعضی از کفرست و بعضی از کلیبه فقط کلیبه به ما اونزل علا محمد صلی علیه و آله و الان طبق شرائطی که ما داریم این حدیث صحیح نیست این دیگه هاشی بزنیم که این حدیث صحیح نیست و پی روایت نصر ابن قابوس هنه سادر علیه السلام المنجم و ملعون و الکاهن و ملعون و ساهر و ملعون هست روایت نصر ابن قابوس قابوس در کتب عربعه نیامده الا در کتاب کافی در کتاب کافی زید این به این مهد المنجم ملعون و المغنیت ملعونه و من و کسوا ملعون این طور هم که مزمونی داره از که در کتاب کافی این سه فقره فوق نیامده این هم قیل عزیبه مضافه که روات مدسون قابوسش، قابون سوش ایراهیم اصحاقه من داشت که احران نهاوندی ضعیف باشه اگر نباشه رو برآورده می‌شدین مضافندی در کتاب کافی این سه عبارت نیاماده المنجم ملعون و کارن ملعون و الصاهر ملعون این در کتاب مرحوم شیخ داره شیخ صدوق آورده این در کتاب تقی هم نیست در غیر کتاب تقی شیخ صدوق نقل کرده رواص ما یه نفره سند یکیه نصر در فاضل تمام یکیه لکن این سه تا عبارت تو هست المنجم ملعون و این سندی که الان که توش اصحاق ابن ابراهیم هست این هم ضعف اسناد داره این روایت نسب آرموز هم با این متن اشکال داره وفی نهج البلاغه این هم الان مفصل الان هم اشاره کردم سابقا هم شهر دادیم این است که ایشان در نهج البلاغه نهر کرده که توش هم داره وقتی توی این جزء اطلاقات هم داره یاکم و تعلومن النجوم یکی همی بود همان صدقه که به حاضر قول قد کذب القرآن این کذب علایه کفره ایا کن و تعلم النجوم اینم تو این روایت هست که جای دیگه نداریم اینجا همده هست المنجم و کرکاهن و کرکاهن و کرساهر اینم تو این مت نهجبراغه هست که در بعضی از متون این روایت نیامده یعنی این روایت الان این به با عنوان مثلا کتاب های مشهور ما یکی در کتاب به اصطلاح امالی صدوق آمده این زل توش نداره المنجم و کرکاهه به قرآن این زل توش نیامده همین قسم هم لکن این روایت در مطون احل سنت هم آمده که این مزارش خوندید دیگه نمیخوام تکرار بکنم تو مطون غیر معروف ما هم آمده نسی احضاج تبرسی در متون معروف فقط در مهجبال آقا هست و عمالی صدوب تو احتیاج تبرسی هم آمده یه متون دیگه هم خوندیم سنیام دارم و اصلای دیگه هم دارن چند تا سند خوندیم توی بعضیاش آمده توی متون سنیام آمده المونجم و کرکاهه انایی حاله این چی که الان در اینجا با مقابل ما با عنوان مهجبال آقا هست فعلا مرسل سنددار هم داره اون سندش هم ضعیفه اون هم آمده. اون ضعیفه ضعفه چند مورد داره نه یک مورد. اون ضعیفه و در کتب اهل سنت هم قالبا مورسل سنشنه این تو احتجاج هم البته خیلی با هم اختلاف دارد توضیح دشتا گذشت که تفران نید و قریبون من ما بین بینه و بین منجمن آخر نها ها ان المسیر ایران فقال اتدری ما فیدبت نازد دار به این منجمن آخری نیست علیشو آخر؟ این منجم آخر نیست یکیه این متن دیگری ای از حدیث که این سؤال از بچه ای که در شکمه حیوانه توی متون اهل سنتم آمده ما هم داریم قالت همان صدقه که با حاضر این این دیگری است که در عمالی صدوق آمده ما وقع بینه و بین منجم آخر نیست یکیه قصه یکیه از کلیم توی ادیه از بساج داره که منجمی بوده کی دوره از در دهقان و مندهاقیر فرس تو یک از داره مصافر ابن عمر بن الاحمر بوده توی یک از داره که این عفيف بن به اصطلاح اشعث بوده بعد از غیث عفيف بن قیسا ذا اشعث بن متون مختلفی داره من دیگه تکرار نمی کنم این به این این روایت من سند ضعیفه با خیر روایت عبدالملک بن اعین المروی عن السقی از کلیم از جمله لوازم خیلی مهم در این مسئله که در کتب اربعه آمده همینه و منحسر هم در فقیه در غیر فقیه هم نیامده و توضیحاتش گذشته شد البته در این کتاب و استاد در مسوالقه در هامشش میشه به و عبدالبرکه بن عیاض از کلمن من را برای شناخت مبانی و استاد در معرفت حدیثی کتاب مسوالقه را مراجعه نشی ثابت نوشتم قبل از اینکه مبانی رجالیشون رو مشخص بکنن نویشان به عبدالملک بن عیاش واه در رسالات عبدالملک زیاد هم خودشون سر می‌دونن لکن این روایت خاطر رو مبانیشان ضعیفشون محمد بن علی ماجلیری داره مشکل این روایت را به وجود محمد بن علی ماجلیری و در اینجا اشکال نکردن در این مسوا مسوال فقاه من فقط برای تذکر ارزششون چون مبانی ایشا در مسوال فقاهه تقیمی که ایشون کردن خودشون بعد از سالیش برگشتن این که خیلی ارزش نداره که ما نصب کنیم یک چیز مبلا میگه بعدم خودش ورگشت ما به لحاظ نظر ما انشاپن به واسه خالی از نیست و توضیحش کردیم. یک رو یک رویه بن عبدالملک آمده در بعض از مثلا بعضی اورا عبدالملک دو طریقش طریق یونس بن عبدالرحمنه که محمد بن خالد برقی نرو کرده یه توضیحاتش رو تکرار نمی‌کنید و این روایت به نظر ما به لحاظ سندی قابل است و در چمیه روایاتی که ما در باب نجون داریم منحط رو بفرده یعنی هیچ جایگی روایت نداریم بلا استثناء و این همون روایتیست که نگه احرق کتبه فقط همینه کتاب سودی فقط در همین روایت آماده هیچ جایگی ما نداریم کندم روایت وسائل ول انر به احرق کتبه ها این علامه به احران کتبه ها نداریم فقط همین روایتیه و توجیهات دلالیش هم گذشت اولا این نوجوبه نه استحبابه نه اشارت مثلا گفتن که این روایت نازره که مثلا به معنای این که به این کتب استحباده من به ذهن من میاد که این قضیه شخصی است چون در اشتره که اتخذی حکم میکنی گفتن بله میگه من به نجون نگاه میکنم خواهی کار انجام ده نجون میگه, خوبه میره. میگه بده از که سوال بپرسون. چون امام میدونستان که چون علم نجوم تازه داشت ترجمه میشد یه چند تا اصلا ورده نامرغ در علم نجوم باطلی در بین ویشارا و ستاره دلگی به هم میزنه. این فقط به سفر نیست چون در این علم نجومای اینجوری حتی یه مشکلی که بسیار خطرناکی رو مظهر میکنه. مثلا میگه اگر طالع اینطور باشه مثلا مبادرت امروز مثلا خانم تو فلان عمل زشت انجام میزنه. خب اگه تغذیه باشه خب تمام زندگیش برد میخوره. تصور بکنید اینکه که امام برای قلع ماده فساد، یعنی امام خودشون فهمیدن که این درمیه این معلوم میشه چند تا ورقه باطل چون خود این علمها ها پی نفسه درست نیست باید این باطل هم در باطله یک یعنی باطل اون علمه اینه که امام سلامالله علیه فرمودن احرق کتابت ما روایت دیگری در کتاب سوزی نداریم الا همین روایت که از کردیم به نظر متعارف علمای ما ا یا ماجیویه و به نظر ما اشکالش اشکال فهرستیه نسخه شازیست از کتاب یونسون ما اعتماد بر اون مشکله اگر تازه اون طریقه اون مراجعه کنید روایت چندم شد شمارش دیگه است من نیست وری فی مفضل مفضلیت نعمر المرویت انمانه الاخبار از کردیم این از اشتباهات محروم صاحب وسائل این اصلا روایت نیست یه روایت رو در معانی اخبار نقل بکنه در معنی بعلبلا ابراهیم ربو به کلمات بعد از این روایت تمام میشه و میگه وله قول الله بعلبلا ابراهیم ربو به کلمات نکن آخر اخر این واضحه از اینجا کلام صاحب جوابه و صاحبه امراخ معانی الاخبار صدوق حدود دو صفحه دو صفحه او خردهی خود مرحوم صدوق مطالبی میاره این خواندن مطالبی ایشان برای ادراک از نحوه درک صدوق و استظهارات صدوق و فقاهه صدوق خیلی خوبه که نگاه بکنه من دیگه وقت نمی‌خوام اینجا بخونم دو صفحهس واقعا مقدار چون در این رساله صحو و نبی که نسبت داده شده شیخ مفید به شیخ مفید ایشونه ای که از حملات شدیدش به صدوق اینه که ای ایشون اهل فقه نیست صدوق که فرهم یه ابو جعفر صدوق اهل این نیست از وجود الاحوار ایراد ما آن حدیثی نمی‌خوان. بعد همین رو قاعد ایراد است. اباحت توندین است با استاد نیست که انصافا ملایلی درست هم نیست. نیست. لكن انصافا دو سه صفحه ایشون دقیق درباره ارواح این اطلاق رو به کلام نوشته. انصافا آدم که این ترجمهش این روایت اصلا روایت نیست. این آیه فاضل معاصر نوشتن مزمون که اینا کلام صدوق باشه. درسته؟ کل اون دوست سر فکرم از صدوق رفتی براید نداره این اصلا روایت نیست که ما میخوابیم یا سعیی نیست این روایت بعدی روایت بعدی میفرماید که ما یاد دلو علیه ما ان المحاسم ان ابی ان ابن ابی امیر ان امر ابن ازینه ان صوفیان ابن امر این رو ما نخوندیم یک چیزی شبیری این رو از یک کتاب دیگه خوندی؟ اینو نخوندی؟ اما چون خونده شده بود در خود بهار نخوندیم از کلان هست این هم در کتاب محاسن سفیان ابن عمر بله قال کنت انظروف بن نجوم و عرف و عرف و طاله فید خلونی من دالکه شیعون فشکوت دالک الابلحته موسمن جعفر علیه السلام فقال ادا وقعفین هسته که من دالکه شیعون فتصده علورا اول المسكين ثمن روزه الله یک ساعته روایت نشون میده که اجمالا حکم بنجور و امام انزا میکنن فقط میگن دفعش به صدقه است این روایت الان در کتاب محاسن پیش ما آمده به لحاظ سندی محاسن یعنی برقی پسر از فلرش از ابن ابي عمر از عمر ابن عذینه هم از اجلای اصحابن حالا علا کلام در محمد که اوزن کان زعیف هم حدیث هم. هست اما در مبونی هم. حدیثی زعیف هست ان سفیان ابن عمر ایشون رو الان نمیشنسیم به لحاظ تاریخی به لحاظ اصم این اسم الان ناشناست تشخیصش نمیدید ان عمر ابن عزینه ان صوفیان ابن عمر قال کنتو بعدم در فشکوتو داله که موسر جعفر خیلی بعیده چون بعد از شهادت امام صادق مدت کمی عمر ابن عزینه در کوفه بود بعد رفت یمن و بعد بر... نگشتن مثلا عمر ابن عزینه مشکلش هم اینه بعد یه اخبارش به ما نرسیده من کرارا نعرض کردم عمر ابن در کتوب رجالی ما دو نفر یکی اونسه یکی حریزه ابن عبدالله یکی عبدالله ابن موسکان رو مستقیم خدمت امام نمیرسیدن از شاگرده امام میکنه. نفر سبو هم به نظر ما همین عمره این عضلینه هست ایشون هم خدمت ایمان یا به نحوه مکاتبه هست نامن، نامنگاری میکرده یا از شاگرده ایشونه و ایشون م... مگر اوائل موسیم جعفر باشه و الا ایشون تقریباً سال‌های 158 هجری رفتن یمن ایام المهدی برد به خلیفه عباسی سر منصور ایشون رفتن یمن و خبری هم از ایشان نشد و در همین فاصله کم هم ابن ابي عمر کتاب ایشون کده به لحاظ فهرستی مشکل نداره عمره موذینه کتاب داره کتابشه ابن ابي عمر نعر میکنه و برقی هم کتاب ابن ابي عمر رو به خم اوورده مشکل نداره بغی چون ضعیف و فلا حدیثی نیست هست اشتباهاتی براش رخ داده احتمال میدیم ولی علم عند الله اشتباهی بر به نقطه داده باشه بر حال شفیان ابن عمر رو الان نمیشناسید و این اینکه عمر ابن عذینه با یک واسطه از موسی بن جرب غریب، نمیخوام بگم قطعاً باطله. لا یقبل عن غرابه. شاید این نصه ای که در اختیار مردم برقی برقیه پلر بوده، یه مقدار خرابیش مالی این بوده. احتمال داره ولی این میکنم. اجاز تو از موسی صادق نقل عرض از ابو الحسن موساس ساوا. بله. نه در مصدر ابن الحسن موساس در کتاب فقید از ابی عبد عبدالله همین روایت در فقی هم آمده از کتب عربعه در فقی هم آمده این طوری خوب دقیقی رویه عنه ابن عبی عمیر آل قلتو لعبی عبدالله کنتا انزول اپن نجون و عرف و عرف و طال فشکوت لا لعبی عبدالله این به بخشیم در فقی آمده همسی که شما فرمونی در محاسن الی عبدالله آمده داسته انجا به جبه بخشم در اونجا یکیش عبل حسن آمده این رواهت واحده یکیش ابی عبدالله آمده نقرد کردی؟ در کتاب فقی عبل حسن آمده که حالا امکان داره ابن عبی عمد. این در کتاب محاسن هم تو که شما ابی عب... عبدالله داره فشکر تداری که در عبی عبدالله لیکن صوفیان ابن عمر را نمی شنسیم فعلا آشنایی با صوفیان ابن عمر نداره اما در نسخه فقی, در نسخه فقی خوب دقیق بکنید من کرارم از کردم این من المسلم قطعا که کتاب نوازر ابن عبی عمر که 6 جلوی در اختیار صدو بود تصریح میکنم این کتاب نوازر ابن عبی عمر در این فقیح تصریح لیکن وقتی اینجا نگاه میکنم میگه رویان ابن عبی عمر معلوم میشه مشکل داشته بیشون در نسخه مشهور نبوده بلیل ای کنون وجه نداره کنگه رویان ابن عبی عمر ایشون تعبیل رو به رویان ابن عبی عمر کرده ظاهرا خود ایشون هم در صحت این نسخه شک داشته چون این مطلب ارز کردن به دو واسطه از امام سادر شده در این نسخه صدور این طور بوده ابن عبی عمر ان اول حسن موسیم جهده احتمالاً یک نسخه خیلی روشن از کتاب ابن نبی نسخه مشهورش نبود الان گوم رواه ابن نبی عمر ور کتاب ابن نبی عمر این تعبیری ایشون ابن نبی عمر ایشونه هم مشکل داره این روايات ای ابن نبی عمر سابق سابق خونده شده ده روز اگه یادتون باشه چون مرحوم اس امطوز از این رواات یاد که ابن نبی عمر کانین زروف نشو میخواد تایید بیاره که این چیزی درست چون ابن نبی عمر کانین و مرحوم مجلسی ایشون اشکال کرد که نه بابا این ابن ابي عمره این سفیان ابن عمر بود که آنزور به نجوم این مطلب گفتیم سابقا اما به این تفصیل صحبت نکردیم پس این روایت الان به طریق محاسن مشکلش سفیان سفیان ابن عمره و نمی و به طریق مرحوم شیخ صدوق مشکلش رو بیان ابن ابي عمره وصول نداریم که در نسخه اصلی و مشهور ابن ابي موجود بوده این هم راجعه به این روایت. بعد یک تمایز هر من قولی حکالا فمن صدق قولی علی الصادق فمن صدق کہ بہالا فقد سغن عن رسالات اللہ این ذیل روایت نحوی علاقه است این همونه و عرضو این روایت چندین مصدر و چندین سند داره تماماً یا مرسلن یا سندهاش ضعیف این هم راجدی اون روایت بعد بله یک مطلب دیگه هم که بن ال... نهوسه تل ایام الوارد به روارا اگر مایل باشین بخونیم رواز قمر در عقرب و اینها با که چون اینا برون بهار و سنتاووس اینجا آوردن از این که گفتن قمر در عقرب پس اجازه داده شده ما کلا اونها رو نخوندیم کلا نواس رواز قمر در عقرب و... نه اینکه حواسم نبود جلو هم بود دیدین اگه بخییم بخونیم اون یک بحث خاص خودشه بعدم شناختن به اصطلاح اینکه که قمر در عقرب یا نه این مستزمه که علم نجوم و پیشگویی این حرزا توش باشه اون حرزا توش لازم نمیاد بعد مرحوم شیخ عبارتی را از سید مرتضی کرده عباضیشون ناقصه ان شاء الله بعد عبارتی رو از عبارتی از مرحوم علامه نعر کرده از شهید نعر کرده, جامال کرده. از امام مقاصد نعر کرده که ان شاء الله بحث میزیم برای بحث بعدی که ان شاء بحث به اصطلاح چیز باشه کلمات اصحاب به یک ترتیب معین خودش به اذن اون وقت برگردیم به بقیه روایاتی که در اینجا هست چون یه اون را بحث نداریم و لکن ظاهر ما تقدم فی بعض الاخبار من ان المنجم به منزله کاهن الذی هو منزله ساهر الذی هو منزله کافر از کردیم این مضمون منحسرن در زیل قصه امیر رو با اون منجمه آمده جای دیگه ما ندیدیم و اون هم تو نحج و آمده همون قصه رو نرافر کرد در امالی توش نیست تو امالی نیست همون تو نحج و هست و در ادهه هم از متون اهل سنت هست تو همین قصه رو نرف تو ادهه هم نیست در متون ما به نحو مرسل در احتجاج آمده به نحو مستند در امالی صدوق آمده به نحو مرسل در کتاب رو نحج آمده این هم مساجر ما. اما در مسادر آمه در کتاب سفین ابن دیزیل آمده در کتاب تسکت الخباس به اصطلاح سفت ابن جزیان متعرض عدله شدیم و روشن شد که این مدن ثابت نیست این خیلی من عمدن خونده هم که غلط شنه که این شیخ انصاری در یک مسئله این همه روایات نیسته حالا که نگاه نگویم همه شراب ده یک دادو سری توش بده جب تا اینجایی ما گفتیم یک دانه روایتی که تماماً سراله صحیح باشه و مسترش درست باشه پیدا نمیشه بعدشم و منهایی از هر اند مارتب و علا تصدیق منجم منکونی تردونه قرآن. اینم باز در زید همون روایت نحضر علاقه هست. و اما قول من صدق منجم فقط کفره این از کدم شبیه مضمونش در نحضر علاقه است و از پیغمبر هم نقل شده هم سنی نقل کردن و هم شیعه که نقل شیعه کردن محل کردن ماست فعلا در اختیار ما نیست نقل شیعه بعدها تو کتورفتی مشهور شده بله در نسخه تسکرات خوا... خواست سبتنجون جزید همون قصه داره فعلا نیست سمعه رسول الله یک اونجا داره جای دیگه ما او رو پیدا نکردیم اینم راجع به این روایت که چند بار ایشو در حقیقت همین روایت رو خیلی تکرار می فرماید. بله بعد از جمله روایاتی که هست یه روایت نسبتا به روایت ب... ایشو نروشه مارواه و فلبهار ان محمد و حارون ابن سهل نوبختی از کرا نوبخت خاندان فارسی زبان بودن مسلمان شدن یک شرحی هم داره در جام چینزم از این این تحقیق کردن این نوبخت نیست نوبخت هست نوبخت هست حالا از کجایی در برده نیمید علایه حاله محمد و هارون اینا خاندان نوبختی خاندان معروفی هستم که اصلا کنیم یه وقتی هم گفتم دکتر اقبال آشتیان اصلا یه کتاب راجعه به خاندان نوبختی نمیشته اصل اسلامشون خودشون شگر نامشون ما از خاندان نوبختی یک ادلی از بزرگان ما از خاندان که ن روات نیستن یعنی خط عقلانی هستند. کسی که از اینها شخصیت به مثل ما آخونی و ما داره خیلی جا افتاده از همون حسینه نروح نوبختی نارده سوامه داریم تو اینها بقیه داریم اسما اینها تو کتاب نجاشی جدگه آماده کتب بیشترین قسمت کتبشون کتبه به اصطلاح اقایدی و کلامی اینا هستن در روات کمتر هستن. حالا این یک روایتیه که نخوندم تو روزن بختی از ایشون میشد بهار این رث میشه که میشه بهار باز میشه فرجل المحمود که این روایته در فرج المحمود بهار که خودش نخورده بهش حاله نجوم که فرج المحمود سید منتابوسه و دیروز اشاره کردن شما رازی می‌خوندن اونم یک روایز طولانی است که توش مسائل تناقض و خود صاحب بها هم یک توجیهی داره و توجیهش هم خیلی روشن نیست چیزهایی در دستفرد فلك و اینها که این یه مقداری در اون سالهای 140 تا 145 این کازه علم نجوم و مباحث نجومی مطرح شده بود هنوز دقیق ترجمه نشده بود هنوز دقیق نیامده بود این کمی با اوهان اوهان اونی که در زمان پیغمبر بود 100 درصد اوهان بود اون پیشگویی و طلسمات و رسم و هر مرغ جنجی و احزار الجن و اینا بود اما اینی که یواشا علم آمد این هنوز هم باز با یک نوم اوهام آمیخته بود با یک شبیه پیش بویه ها حالا حاله اینا یک روایت است؟ چون روایت مستر واضحی نداره مثلا هم خیلی همچین تعجب آوره لذا دیروز متعرض نشدیم ایشون نوشه روی عید مارواه و بهار ان محمد واحارون ابن سهل به ابن ابی سهل شد باشه عبی سهل نوبست سر سهل نوشه شد سهل باشه. بله؟ ابی سانند رو ابن ابی سانند نوشتش اشتباه باشه انا ایوه حالن این روایتو دیروز عذرکرد مصدرش از یک کتاب عتیق هست نوشته اسمش کتاب التجمل حالیش دوس شما مال کیام هست نمیبینید معلومه سر طاووسه معرفی نفر کی این کتاب مال کیه اون وقت در اون کتاب تجمل تو مؤلفش رو نمیبینید و به نحوه جاده به سر سید طاووسه رسیده از این دو بزرگوار نقل کرده خب طبیعتا ما الان نمیتونیم برای این عرضش علمی باز کنه این هم راجع به روایت سهل اولاد سهل بی سهل نوبخت از جمله روایات ما اخیر ما فیل احتجاج انه هشام ابن الحکم قال سهل از زنجای ابی عبدالله نمیدونم خوندم یا نخوندم مطالعه چند بارش کردم خیلی تو خونه اما تو درس خوندم یا نه این روایت مرسلن در احتجاج آمده این روایت مرسلن در احتجاج تبرسی آورده ان هشام ابن الحکم که دقل زندیقون علا عبدالله جای دیگر نداریم محصرش هم واضح نیست و مضمونش هم خب انشاءالا بعد در مقام مضمون عرض میکنیم نصفت دادن بگیم که مثلا افلاک خودشون چیز دارن تأثیر دارن یا ندارن نصفت بهونه. این روایت هم بلا حادث سندی فعلا مشکل داره یعنی نمی نیم گیرم مثلا صدیه روی چیه الا مرسله صاحب احتجاج غزوان الله تعالی علیه اینم راجع به این روایت یه روایت اول لا, لا انجو جل امور اول لا انجو جل اشهاله ها من صابقا استخدار شده نالا در کلون نسخه نوشتم الان تو زهنم سن سندش نیست آن به نظرم من بد نبود بعد حدیث دیگری هست باز نشه مافل احتجاج انا ابان تن تقلب در حدیث یمانی الذي دخل علی اب عبدالله و سماه به اسمی من یه توضیحی ذکر کردم این حدیث مشتمل بر یک در مسائل عجیبه و عجیب غریبه در نجوم که مثلا اون طالع فلانی اینطوری نجم فاصله ظاره با خورشید در حدی اون چوری بلد نیستما اسم یک روایتی رو به نام سمبلی یا شمینی میبره این چیه میگه بلد نیستم. از کردم این مضمون یک مقداری با اختلاف ما و با یکی به امیر نسبت داده شده به امام صادق نسبت داده شده به امام رضا هم نسبت داده همشم داره اون خلاصش اینه که امام علیه السلام آمدن گفتن که شما منجمین درست رد نیستی؟ مثلا اگه بردین فاصله مثلا مقداری که زهره از نور خورشیدگی اشاره میگه برای و فلان سنبله فلان ستاره کجاست تاثیرش چیه این اسمش زهرام نشینم این مضمون مکرر شده دقیق میفهمید و ذهن ما میاد که بعد امام در اونجا که اگر شما مثلا یاد بگیرید به خیلی از مطالب میرسید اینها رو قبولش بسیار بسیار مشکل سرد نداره این روایت سر نیست این به واسط انتقالم یکی دو سال واسه انداره که یک گرافی بین نجوم و بسایاها که گفتی که مثلا, مثلا نجم الله بله بله ما اول که فی زهر قال نجمون نحسون قال اولاد حب الله داره نو نجم امیر عمیر المؤمنین و هو نجم و و هو نجم صاحب و ساغر الالهی فی کتاب معلومه نجم ساغر ستاره دنباله داره اینجا به زهر تفسیر شده کی دو منظومه شمسی نمیدونه حالا یک چیزی قبول بکنیم رو علایه حالا از کریم بعضی از روایات حتی رابطه نجوم رو با ولایت و وساعت هم دادن اینا هیچ کدوم سند روشه ندارن یکی هم روایت مدانه نیست بله اینه به نظر یک روز خیلی مختصر خوندیم اینم در بهار نقل کرده در از کتاب کافی نقل کرده روایت مال کافیه چند تا تا حالا از کافی بوده که ما اینا رو دقیقا بفرمون روایات کافی توضیح لیم به اجمه ها که در نجوم آمده فقط تو روزه کافیه به اجمه ها با قیل المهرام جده هشتم کافی که روایات متفرق و کشکوی مانند داره که اعتبار نداره و سند این روایات هم ارز کردیم تو سهل ابن زیاد عمل حسن ابن علی ابن عثمان این حسن ابن علی ابن عثمان ملقب به سجاده اصلا ملعونه از غلاطه کاملا مردوده این نشون ده شه لا که نه مجهول نیست ایشون کاملا ضعیفه این هم راجع به حدیث مدائنی که این هم باز رفت بین نجوم و بین اوصیاء داده که اون نجم الاول ابیا و اوصیاء و اون نجم امیرالمؤمنین یه امرو به الخروجون از دنیا و از دولتش اینا رو خودیم ظاهرا دیگه تکرار نکنید ای حاله ایهاله اینها اشاره ی به این مطلب از مرحوم مجلس مرحوم شیخ انصاری و ظاهر عن انور نجبه ما ذکر من المحاسن کنایه از انقضاء اله این کنایه باش یا نباشه تصویر این مطالب بسیار بسیار مشکل است تو قبولش میگاز صعوبت و اشکال بعد این روایت قابل قبول نیست روایت دیگری که در اینجا به اصطلاح روایت کسی روه و قلی روه این روایت روایتیست که یک مقدارش در کافی هم آمده این یک مزمون است که علم نجوم درسته و حق هست حالا به تعاویر مختلف و حقیقت این علم رو غیر از خاندان در عرب و خاندان در هند نمیدونه کسی در بعض از همه که چهار حرفه اون خاندان هند یکیش شیدونه خاندان عرب هر چهار سال نمیدونه تمام اینها به لحاظ سندی مشکل داره تمام بدون استثنا این روایات اجازه بعضه ما داره دوره کما یوم اله و سالم از کردن در اون روایت امام میفرما نجوم اینقدر همه که شما با نجوم تشکیل حتی یک سبزی که در باغچه شما در اومده با یک تذیدی که فرض تمام داره میشه با نجوم کش شاید هم مراد اعلی هم سلام از این نجوم علم خودشون باشه که در بعضی اشاره بشه ننجوم این النجوم مصطلح چون الان هم حتی ها انصافا تاثیر به حساب قرشی و سایر نجوم فلکی در حوادث ارضی‌ها این حد این روشن نیست احتمالا مقدار زیادشم هم به حوادث خود زمینی برمیگرده نیست که همش به حوادث نجومی برگرده حالا ان حالا بعد اه... یک توضیح رو عرض میکنم روی این مطلب یک نکته‌ای داره که بعد عرض ایشون میشه روابط هشام علااتی این هم مرسل روایت درستی نیستند نه در حساب حق و بلکه لا يعلم ذلك الا من علم مواليد در خلق این نکته‌ای دکته ظریفی است شاید از که این نقطه اشاره به این باشه که تمام حوادثی که در روی کره زمین میشه اینا یک تفصیل اجمالش برمیاد به اون اصل وجود اون اصل وجود مثل یک نقطه است که انسان یک قضیه حسیه یک مرکبی است که باشه انسان 20 تا طرح می حالا این این توضیح را ارض بعد ایشون روایت احتجاج به اون دهقان المنجم الدلی استقبل امیر المومنین ارض کردیم دهغان در روایت داره که اسمش سرسفیل بوده که شادن سرسفیل باشه. این روایت هم الان ارض کردیم سند نداره و, و فی روایت اخرى احسابها كنت تا آلم بالاکوار والعدوان و این روایت گفته به روایت اخرى چند تا روایتی که تمام اینها بالحال سندی. مشکل داره بعدم هم روایت الرحمن ابن سیابه رو برده یا سیابه که الان هم رو خوندی اون هم نتیجهش اینه که اگر انسان حساب دعیه میکنه تمام رو میدونه اما این هم اصل نداره بعد سمون در فیل بهار وجده فی کتاب اتیق انعتا قیل قاد قیل لحلی ابن طالب این هم از کتاب نجوم مرحوم سیده تاوسه که مرتبه بعد یک قصه هست راجع به داوود و ورجت انبیا صابرین که کسی با نجوم یک قیله به کار برده شد که داوود در اونها غلط پیدا نکرد اون استباراتش مختلفه. بعضی واسه چون خیلی زننده است دیگه من نمیخونم چون خیلی بی‌مزه و بی‌معناست. حالا یکیشم اونه یک روایتن در بهار ایزن عن کافی به اسناد نبی عبدالله هست کردن این روایت سند نداره تو همون روایت چیز آمده کتاب روزه کافی. و به اسناد از محمد ابن سالم ارز کرده این چیز غریبیه در روزه کافی آمده محمد ابن سالم هست محمد ابن هست محمد ابن قانم هست محمد ابن بسام هست مرسلم هست نمی چیه چیه این خلاصش اینه که علم نجوم درست بود تا وقتی که رضا شمس شد داره از بعد رضا شمس حساب فلک به هم خورد این هم سندش اصلا کاملا به هم ریخته است. و خبر یونوس قال قلط العبی عبدالله خیلی معلوم شخص نظره خراب کرده این رو هم در کتاب بهار از کتاب فرج مهمون از یونوس نبدالرحمن توی جامعه سغیر نهار کرده هر که در کتب از کتابی به نام جامعه سغیر به یونوس نسبت نهاره است چی بوده اون کتاب نمیدونیم مضافن که یونوس نبدالرحمن از امام صادق نقل نمی کنه این روایات کاملا مشکله و خبر ریان بن سرد تو ذهن من ریان بن کبیره حالا اینجا سرد نوشته خیلی سنجو می کنم آله حذر این در بلحسن رضا از صبا ابن نصر الهندی این رو توضیح کافی عرض کردیم این ریان بن شبیب ریان بن سرد یه وقتی هم اونجا اینجوری اشتباه نشه این شیعه است این خیلی شعن نداشته این رفیقی ما در حدیث نهار کرده یک ریان ابن شبید داریم متاسفانه در روایات ما حتی کتب رجالی ما کتب تاریخی ما بینید این دوتا خرد شده ریان ابن شبید لاقل اهل منبر چون نزدیک ایا محرم هست او اول محرم خبر معروف یبن شبید این کنت باک یا یعنی نهالاشه این ما لحنی ریان ابن شبیده رعیانه نشبیل این یاد داعی, داعی معمون عباسیس یاد داعی معتصم در کتاب های ما یکی شما شد داعی معتصم برون نجوشی یکی شما معمون نمیدونه داعی این یکی یا داعی اون یکی و این دوتا یعنی معمون و معتصم هر دو پسرا یا حارون هم. هر دو برادرن، لکن مادرشون مادراشون می‌کنه و هر دو هم مادرشون کنیده امه بره هم معمون مادرش ام بلد هم مختصم اسمشون رو از هم یکی نیستن مختلفن حالا این که من خواستم شرشه بشم بخیق طبق قاعده این ریان ابن شدید از عبید بود و به آزاد شده اشغالو دیگه دگاری خلافت دیگه اما اصلش عبد بوده مثل خواهرش بهلاخر دو این یکی بهلاخر خواهرش زن هارون بوده که معمون به استل ازو دنیا آمده یا معتصم عباسی این رعیان ابن شبید اساساً عرده اون رعیان ابن سرط اشعری قومیز اصلا عرد نیز از خانوه اشعری های قومیز یمنی هست اینا از زمین تا آسمان با هم فرق دارن به درکت میکنیم و توی چند تا از و در کتاب کشی، یه اونجور توی بحثا بشم یه خبر مفصلی از رعیان ابن اشتباه اون رعیان ابن شبیده. بین این دو تا متاسفانه اشتباه اشتباحد شده شرح طولانی داره وارد بحث میشن این ریان ابن شویب چون دایی خلیفه بوده یا حالا دایه برداشت شده یا حالا احتمالاً به نفوذ سیاسی دیگه ایشون از عراق میره تا مرد همراه معمور چون حضرت رضا بانوی اهل بودند از جریانات حضرت رضا رو گزارش میده این ریان نشویب چون بعدم آمده به برای قم گزارش داده یکی از گذار این کتاب این گزارشی که داره گزارش این گزارش بعدها در بغداد نقل شده اشتباه نشه این گزارش نسخه ای دور رسیده در بغداد نقل شده وقت در بغداد وقتی نقل شده اصلا یک شخص نام احمد بن محمد شیبانی کلا نشری تازگی اسمش توی مشایخ ابو غالب زرار پیدا کرد این مشایخه علمی به معنی دیگه قصه تاریخی براش و یحیی بن زکریای لولویی از علما ما ظاهرا در بغداده و این کتاب این نویسنده توش قضایای امام رضا داره خب شیان ازش نعر کردن یکی از اون قضایای یک شخص هندی منجم به نام صبا ابن یا صواب درس با حضرت مباحثه میکنه اینو بغدادشه نقد کرده روشن شد مشکل کار چیه وقتی که این کتاب به دست مشایخه مرگومه نجاشی رسیده یکی از استاداییشان گفته کتاب و مسائل سواحب نهست یکی دیگهش گفته کتاب و ریان ابن شبید فیلمسائل نفید حال ها, ها سواهب نهست نجاشی هم از باب دو دوتا عنوان زده هم تو ریان ابن شبید سند داره به این کتاب به ریان هم عنوان زده سواهب نهست الهندی. هندی البته این ها تعمل نکرد توجه یکیش از یک استاده یکی از استاد بیگره اونجایی که رایان شبیب نسبت داده از کتاب ابن نوہه اونجایی که رایان به خود سباه نصف داده از کتاب ابن عبدون یا ابن حاشر ابن عبدونه و به نظر ما هم با ابن نوهه کتاب ما رایان شبیبه به وقتی به سباه ننسل نداره و به نظر ما اگر مرحوم نجاشی اصلا عنوان سباه منسل میب بهتر بود اولا این صاحب اون اصلا ما نمیشناسم میگن از هند بوده احتمالاً یه مونیجی بوده مسلمان چون اصلا به عربی میخوره خوره مسلمان بوده شده بودایی بوده شده اسم جعلیه اون اصلا شما نمی ایشون هر از احواله با هم بحث نجومی می‌کردن و رفتن این رو نباید در جوش فهرست مصنفات شیعیاره اصلش واضحه کی بوده چی کاره بوده دیگه کتاب مال ریانه مشبیب بعد نیست اما این که سباهر نصر هندی که هیچ شنه بیشنسی این رو جز مصنفات شیعه اسمشه برای انصافاً یه مقداری خلقمون از کار مربون نجاشی درست نیست و اما معلق نخونه که این دیگه خیلی وضع بدی داره این در کتاب کافیان بوده صدر زعیفه به هیچ نحوه قابل تصدیق نیست و این روایت هم زعیف و بعدم رو... رویت کوکب و اینا که باز گذشت، باز خبر از سیاغیبن عبدالرحمن بعد خبر حشام بعد مرحوم مل... تمام این اخبار تمام شد این کل رواهیاتی که در بحث نجوم مرحوم شیخ انصاری نه رو تمام به اجمعه ها ذریبتستان هست به اجمعه ها حالا بحث این که آیا غوسو با اسم از در روایتی که ما در این چند روز خوندیم و را خطر کردیم فقط این روایت سند جلسه که اخاف و علا امتی اثنه ایمانن به نجوم و تکلیبن بالقدر که به چند مدن آمده این ایمانن به نجوم به سند معتبر هم رسیده به ما سنیه هم داره ما هم داریم سند غیر معتبر هم داره سند معتبر هم داره فقط همین یک دان روایت از کد روایت نجوم سندش معتبره بقیه بلکل محدول درندند د اعتماد نیست در ص الله محمدن وال مثلله بوسو آنکی مسله دیگر نیست که باید با شواهد پیدا کرد.